اینجا میدان است یا یک موزه آثار تاریخی است اسم این میدان بزرگ میدان امام نقش جهان است جالب است که مردم در این میدان سوار درشکه می میشوند بله این میدان به عنوان میراث ملی ایران و جهان ثبت شده است به همین دلیل اتومبیلها تنها از ضلع شمالی میدان عبور میکنند گردشگران نیز با درشکه در این میدان تردد می کنند. دو مسجد در این میدان وجود دارد؟ بله، مسجد امام با گنبد آبی در زل جنوبی میدان قرار گرفته است. گنبد و گلدسته های مسجد امام بسیار زیباست. به نظر می رسد این میدان قدیمی است. بله، این میدان را چهارصد سال پیش در زمان صفویه ساختند، آن مسجد دیگر چه نام دارد؟ آنجا مسجد شیخ لطف الله هست. گنبد آن از زیباترین گنبد های جهان است. دوست دارم این مساجد را ببینم. اول به مسجد امام می رویم و سپس از مسجد شیخ لطف الله بازدید می کنیم.